میخوام عرض بکنم که خیال نمی که یک آدم مسلکی در دنیا پیدا بشه هر مسلکی باشه میخوام مسلک روحانی یا مسلک دیگر ولی یک آدم مسلکی یک آدم مسلکی که از یک عقیده یه ایده و یک عقیده را تعبیب و پیروی می و طبعا برخی از افکار را سد در صد فاسد کنند نه تلقی می کند معتقد باشد که به آزادی ایجاب می کند که هر کسی هر چرا که دلش میخواهد ولو به منظورهای فاسد کردن وزده بیمی خوب بنابراین ما اگر در مسئله کتب زلام حرفی اگر داشته باشیم حرف ما این است که اون کسی که یه چیزی را درست توجه کنه که آنه چی میشه؟ مثلا این میشه که یک شیء یک فکر گمراه کننده از اون جهت که گمراه کننده هست نوشتنش حرام نگهداریش حرام پخشش حرام نشوشم حرام ولی البته اینجا یه مطلب دیگری هست اون مطلب این. از نظر کتی که خودش اون را گمراه کنم و می از نظر او حرام هست. یعنی من اگر این چیزی رایی که می میدونم دونم که ای این لحظاننده هست. مثل مقالاتی که در همین مجلات برای ببرای بیبندگاری ها دارم می خود ندیسم نمی دونه. برای من از نظر من که میدانم این لنظامنده است نوشتنش حرام است پخش کردنشان حرام است اگر دیگری میمگیست باید از نظر من او کار حرامی را مرتکب میشود من رزیفه دارم تا هر حبی که میتوانم جلو و رو بگیرم یعنی لارم این مجلل این کتاب تو خونم را ندارم کوشش کنم که کیاج این پایین بیاد کوشش کنم هر جو این تحیل بشه ولی ممکنه شما بگید بقا از نظر ندیسنده که همیشه اینجور میست ندیسنده فکر تو رو گمراهی میدونه تو فکر اون رو گمراهی میدونی پس اگر ندیسنده ای باشد در بعضی از موارد که واقعا او به فکر خودش همون اندازه اعتقاد دارد تو به فکر خودت این اندازه اعتقاد داریم. همون که او واقعا فکر میکنند که مصلاحه بشریت در پذیروستن فکر همون که تو فکر میکنی مصلاحه بشریت در پذیروستن فکر تو اونم فکر میکنند که مصلاحه بشریت در پذیروستن فکر اوست جلوگیری از فکر کسی که نه به قصد زلالت ولی واقعا هم زلالت باشه به تو ولی به قصد که مردم میمیتر ولی از اگر تو زلالت هست اینجا که تو؟ آیا باید تو حق داری که اگر قدرت داشته باشی که جلو فکر او رو بگیری حق داری جلو فکرشو بگیری یا حق نداری او رو بگیری اینجا که مسئله شکل دیگری بیدانی کنه توجه رو برمیدید دیگه این دی این شکل. در کتوب فقه ها نیست که ما بگیم این شکل قضیه را چی گفتن توجه کردیم اونا فقط از نظر کسی بحث کردن که از نظر اون کس؟ اونچه که خودش می نویسه قطعا زلالت یا اونچه خودش می گهداری می کند قطعا زلالت هست اون دیگری نوشته قطعا زلالت است. اما از نظر کسی که اون را هدایت می و من با فکر او چه کار کنند که او مرتقل است که اون چومی می راس راست و درست است اونجا شد اینکه کردیم که این مسئله یک دلائل نقلی خاصی نداره ما هرچی بخواییم برس کنیم باید روی استحصانات عقلی باید در این زمینه رو کنیم ببینید آقا به مرور من در اینجا باید که دو جهت را از یکدیگر تفکیک کرد یکی این که مسلمان ما با باید افراد ضعیف را از این که مورد دست برد اینجور افکار قرار بگیرند حفظشون بکنیم فرق کنید که شما خودتون که یک تدربه بیشتری دارید و فکر آلی تری رو دارید و یه سر مسائل رو پشت سر گذاشته اید میتونید بچه کلاس مثلا یاد ده و دوازده شما این یه قدرت انتقاد نداره. این برای اولین بار بعضی از مسائل که بروح حرزن بشه گرایش پیدا میکنه، شدیدم گرایش پیدا میکنه. و بساحت یه روزی هم خودشم پشیمان بشه اما تا وقتی برسد به روز پشیمانی خودش بر بیچاره شد قهرش ما خودتون را دا وزیفه دار میتونید که به هر هست این بچه خودتون را هدگهندی این بیماری که از نظر شما بیماری فکری به بیماری روحی هست حیث کنید نگرداری کنید ولی درمیان کسانی که همین جایی که فرما در اصل اون مطلب گفتند در میان کسانی که قدرت نظر دارند به استقلال فکری دارند و به اصطلاح دارای نیروی اجتهاد هستند میتوانند مسائل به تجزیه و تحلیل بکنند وجود افکار مخالف نه تنها زیانی ندارد بلکه سود هم دارد چون برعکس ما را با مبادئ عقلی بر است وجود افکار مخالف سبب تردیم و پیشرفت حقیقت هست حقیقت تجربه تاریخی هم نشون داده تجربه تاریخی هم نشون داده وقتی که یک فکر اگر مایه از حقیقت داشته باشه اگر مایه از حقیقت داشته باشه اگر برخورد کنم با فکر مخالص بیشتر نی... بیشتر قوی میشه بیشتر نیرومند میشه درست همین حالتی که در موجودات زنده مثلا در نبات و حیوان و بدن انسان اینها گفته میشه که به هم نسبت که بیشتر با موانه رو برو بشود و با اونها گلاوید بشه و مجاهده بکنه نیرومند میشه بدن انسان فکر انسان هم همینجوره اگر یک فکر هایی، اگر یک اندیشه زنده ای در انسان وجود داشته باشه هر اندازه که بیشتر مواجه بشه با فکر های مخالف البته در یک حدودی یک نظامی هم داره یک عقیده ضعیف یک مرحله بعد میره ولی به طور کلی عرض می کنن، وجود فکر مخالف سبب نیروو گرفتن و قوت گرفتن فکر خات می شود نه سبب از بین رفتن نباید از مواجهه با باطل به ترسد یه خلاصه مطلب از مواجهه با باطل نباید بترسد و باقر هم دیمی برون نیست و در عکس هر وقت دوره ای پیش آمده که فکر مخالفی و فکر زدی هرگز وجود نداشته اون فکر حق درست مثل یا آبی که راکد باشه رستر جای خودش بمونه و تدریجا افونت پیدا کنه تدریجا یک مثلا خضاهایی درش پیدا بشه یه چیزایی که دیگه او را از اون ماهیتش به کلی عوض بکنه اینان همین حالت پیدا کرده